بسم الله الرحمن الرحیم درس 27 قائده 155 و رفع المشغول انه خوب الان در اون سوالی رو پاسخ میده که چه زمان واجب است مشغول انه مرفو باشه چه زمان واجب است که مشغول انه جی باشه؟ اون اسم سابق مرفو باشه میگه واجب است رفع مشغول انه اذا لم یکن العامل فعلا متصرفا ولا ما یشبههو زمانی که آمل فعل متصرف نبود و شبیهش هم نبود منظور از شبیهش یعنی اسم فائل سیغه مبالغه و اسم مفعول این ستا نبود پس زمانی که آمل فعل متصرف نبود و شبیهش نبود در این صورت باید اون اسم متقدم یا مشغول انه چی باشه؟ مرفو باشه مانند امرون که انهو اسدون امر گویی که شیر هست خب اینجا ما فعل متصرف عامل ما فعل متصرف نیست آمل ما فعل متصرف زیدون علیکه اینجا هم بینیم که بعد الزید علیکه اومده و علیکه فعل متصرف نیست زیدون ما احسنه بعد الزیدون ما احسنه اومده فعل ما متصرف نیست سیغه تجبه زیدون انا داری امس خب میبینیم اینجا هم زیدون انا داری جمله ما جمله اسمی هست جمله چه هست؟ اسمیه. بله انا هست پس در این حالت ها میبینیم که امرون زیدون مرفو هست چه هست؟ قباد هم مرفو باشند دو اذا وقع بعد اذا الفجائیه و واب الحال حالت دیگر که این مشغولا بعد مرفوع باشه زمانی که بعد از اضای فجائیه و بعد از واب حال بیاد در این دو حالت هم مرفوع باشه بعد از این دوتا هم بیاد مرفوعه واجب است رفعش بانند دخل طلبه فا اذا الولدو هو ابوهو وارد خانه شدن پس ناگاه دیدم که فرزند رو پدرش توبیخ می کند خوب اینجا الولدو مشغول انه ماه ولی از اون جای که بعد از اضافه جایی اومده باید مرفو باشه سافر تو و شعب و ینهاهو الخطیب و ان نادش برو خوب در این مثال هم سافر تو سفر کردم در حالی که ملت را خطیب سخنور سخنگران از جنگ نه می کرد اینجا هم واب حالیه هست از شعبو که اسم مشغول ما ان, ان ما هست از اونجا که بعد از واب حالیه اومده باید چی باشه؟ مرفو, مرفو باشه اذا وقع قبل الفاظ لا یعملو ما بعدها دما قبلها زبانی که مشغولاً واقع شد قبل از الفاظی که ما بعد اون الفاظ در ما قبلشون عملی انجام نمیدهد در این صورت هم بعد مرفو باشه فاید خب این الفاظ چه الفاظی هستن توضیحش میده می گوید اراد بالالفاظ التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها الأدوات التي لها الصدارة كأدوات الشرط يراد بالألفاظ التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها الأدوات التي لها الصدارة كأدوات الشرط خوب. منظور از الفاظی که ما بعد آنها عمل نمی‌کند در ما قبلشون اون ادواتی هستند که در صدر کلام بیاد در کجا بیاد که ادوات شرط مانند ادوات شرط این ادوات ما بعدشون در ما قبلشون عملی انجام نمیدهند نمیده مانند الصدیق الزورته و کریم که اینجا از صدیقو باید مرفو باشه چرا؟ چون قبل از ان اومده و این از اون الفاظی هست که ما بعدش در ما قبلش عمل انجام نمیداد, نمیداد. پس صدیقو رو نمیتونه دیگه منصوب کنه ما بعد. ها؟ <تصفح> بله <تصفح> دیگه استفهام ول استفهام نحو علمو هل اتقنته علم آیا اونو محکم یاد گرفتی؟ که اینجا علم باید مرفوع باشه چرا؟ چون قبل از حل اومده و حل از اون الفاظی هست که ما بعدش در ما قبلش عمل انجام نمیتواند. و التحضید یکی دیگر از اون اداتی که ما بعد در ما قبل عمل انجام نمی دهد هست, هست. مانند ابو که هلا هل احترامته فدرت چرا احترامش نکردی؟ که اینجا ابوکه که مشغول انه ماست باید مرفوع باشه و مرفوع هم هست گرفته لا لام ابتدا مانند الادذو لادم مکریم که اینجا استادو باید معرفو باشه مشغوله انه ما چرا چون بعد از قبل از لام ابتدا اومده کم خبریه مانند الفقیر کم اعته خب فقیر او عطا کردی اوو چکار کردی که اینجا؟ عندما يأتي الفق... الفقير بعدش كم أمد وما بعد كم در ما قبلش عمل نمي كنه فالفقير بايد باشه والحروف الحروف المشبهة بالفعل حروف مشبهة بالفعل هم ما بعدشون در ما قبلش عمل انجام نمي دهن معنى الكسلانو اني آقبته كسل انسان التنبل من اقوبتش کردم كي انجا بعد بايد مرفو باشه زيرا بعدش حرف مشبهه الن انا أمده که ما, ما, قا... ما بعدش در ما قبلش عمل انجام نمیدهد و موصول الموصول همچنین موصول ما بعدش در ما قبلش عمل انجام ماند زیدون الذي ضربته زیدون باید مرفوع باشه دیگه نمیتونه منصوب باشه خاطر اشتغال زیرا ما بعدش در ما قبلش عمل انجام دو اذا کان المشغول انه مرفوعا ان بعد الادوات المختصه بالاسمی کان مبتدن او بعد المختصه بالفعل کان فائلا او نائب فائل اینجا یک بحث اعرابی رو توضیح مینه میگه زمانی که مشغول انح مرفو بود زمانی که مشغول انح چی بود بعد از اون ادواتی که مختص اسم هستند بعد از اون ادواتی که مختص چه هستند اسم هستند اینجا در این حالت این اسم مرفوع چه هست باید اعرابشون موقع چه هست مبتدای مرفوع با چه است؟ اما اگر بعد از اون عداتی مرفوع بود که بعد از اونها بیشه فیل بیاد اینجا ده که فائل یا نائب فایل. اینجا یا فائل یا نائب فائل جه رف او علىفعلائللیتی بعد اداتلت یاغه بود و خول و حال خب اگر ادوات از اون ادعاتی بودندن که اغلب بعد از اونا فعلیل بیاد. اغلب این ادوات بر سر فیل میاد این موقع دیگه به خاطر فائل بودن است برتر است. و فاطر از جه رف و ابتدا و وگر نه ارجهز ولی به خاطر مبتدا بودن بخاطر خاطر چ 156. یجوز رفع المشغول انه و نسبه فی ما عدل مواد علیتی تقدم ذکروها جائز است مرفو شدن مشغول انه و منسوب شدن است در بغیر از اون جاهایی که تا این جای کار چکار کردیم ما اون جاهایی رو که نسب واجبه رو ذکر کردیم در شماره صد اون جاهایی رو که رفع واجب است ذکر کردیم در بغیر از بقیه جاها هم رفع و هم نصب چیه؟ جائزه. جائز است. مانند زیدون زرب توهو زیدون نرد. اینجا هم جائز مرفوش کنیم زیدون رو هم جائز منصوبش کنیم بگیم زیدن زرب توهو و میتونیم بگیم زیدون نرد. بعضی جاها منصوب بودن راجع هست در 157 و پنجه هفت همین چیزو میگه میگه یه ترجه هونست راجع هست برتر است. منصوب شدن مشغول انه اذا وقع بعده فعل طلبی زمانی که بعد از اون فعل طلبی آمده باشد مانند امر نه و دعا اگر بعد از مشغول انه فعل طلبی آمده باشه امر باشه یا نه باشه یا دعا باشه اینجا بهترین است که مشغول انه منصوب کنیم مانند من اباکه اکرم هو اباها اباکه پدرت رو اکرام کن پس ابا از جا که بعدش اکرم فعل امر اومده نصبش راجع هست از لا تن تنتهره بله گدار مران خب اینجا از اونجای که بعد از مشغول ان که سائل باشه نحی اومده پس نسبش راجعه از سائله اخاک وفقه الله اینجا هم اخاک از اونجای که جمله دعایی اومده است برادرت را خدا موفق کند اینجا راجعه ده که اخا بشه؟ منصوب بشه فواید لا فرق في الطلب بین ان يكون بلفظ الانشا كما رأيته و بلفظ الخبر گفته بود بعد از فعل طلبي بیاد راجع که ك... اگر بعدش فعل طلبی اومده بود راجع مشغولا که مشغولان منصوب باشه حالا بیگیم فرقی نمیکنه در طلب که با لفظ انشا باشه مانند هو لا هو یا با لفظ خبر باشه مانند اخاک وفقه الله که اینجا الهازه لفظی وفقه الله فعل ماضیه آه؟ ولی معناه تلبی داره معناه چی داره؟ معناه دعا داره پس فرقی میکنه که لفظش انشاء باشه یا نه مهم اینه که اگر طلب بود اون موقع ارجحان است که اسم مشغولا منصوب باشه زیدن الله غفر الله له که اینجا لا غفر الله له با لفظ خبره با لفظ چیه؟ بله ولا في الأمر بين يكون بسيغة و باللام فرقه لا يمكنك أمر ما إن أمر كما أمدين كي أمر بسيغة باشي مثل أكرم هو كي أمر بسيغة باشي كي أمر بلام باشي ماننده أمرا ليرحمه الله كي إجا أمرا ليرحمه الله ليرحمه أمر بلام هست دو إذا اقترن الفعل الطلبي بالفعل وتزمن الاسم معنى الشرط امتنع الناس كل من له در ميجي ميجي با وجه ورف نهو کلو من ینصر که له الجمیل خوب در تبصیره شماردو میگه زمانی که همراه بود فعل تلبی با فا فعل تلبی ما با چه همراه بود؟ با بود و اسم هم معنای شرط متزمن معنای اینجا نسب میگه ممنوعه اینجا نسب چه؟ ممنوعه و بعد مرفوب باشه مانند کل من یعن سرکه فرعه لحل جمیل که اینجا کل بعد مرفوب بشه چرا؟ چون فعل طلبی ما که فرعه هست فعل امر هست ارعه ببینید کروش روش بده روش چی اومده؟ باله و ایلا وجب نست وگر نه نسب, نسب واجبه هست سری بعدی اذا تقدمت ادوات و دخولها على علی الفیل زمانی که قبل از این اسم منصوب ما از اون ادواتی اومده بود که غالبا بر سر فیل می آید. اون ادوات غالبا بر سر چی می بر سر فیل می در این صورت بارند همزه استفهام که غالبا بر سر فعل می آید. یا ما و لا و این نافیه ها که غالبا بر سر چی اینجا هم نصبش اینجا هم راجعه اینجا هم نصبش پس نصب مشغولا راجعه از زمانی که واقع شد بعد از اون فعل طلبی دو نصب راجعه از زمانی که آمده بود قبل از اون اون ادواتی که غالباً بر سر فعل ها بیاد اون ادواتی که غالباً بر سر چیا مانند این چیزایی که نام برد همزه استفهام مولا و این نافیات مانند اک کتابه نا قرعتهو که اینجا کتاب راجه اینه که منصوب بشه کتابه چرا؟ چون بعد از همزه اومده که غالباً بر سر فیله بیاد همزه یا بعد از ما نافیه مانند مد درس ابغازهو مد درسه؟ اب غزهو خوب اینجا هم از اون جایی که مشغول انه بعد از ما اومده و ما غالبا برسرف ایلام پس بس ارجح است که منصوب بشه واجب نیست ولی ارجح. فایده اذا فصلت همزت الاستفام ان الاسم المشغول ان بغیر الظرف فالمختار و الرفع انت زیدون تزریبهو یک فائده رو اینجا ذکر میکنه میگه زمانی که فاصله اومد همزه استفهام از اسم مشغول ان آقا یعنی بین همزه و بین اسم مشغول انه فاصله اومده بود ها چی اومده بود؟ فاصله. و اون چیزی که بینشون فاصله آورده بود هم ظرف نبود ظرف اینجا مختار همین است که مرفوع بشه مختار قول برتر همونیه که مشغول ان مرفوع شه مانند ان تزيد تزربه که اینجا بین اع که همزه استفامه و زیدون که مشغول ان با انت تا فاصله اومده با ظرف نیست پس راجح این است که زید رو مرفو کنیم مختار این است که زید رو چیکار کنیم و اذا کان الفاصل ظرفا فالمختار النصب اما اگر فاصل اونی که فاصل انداخته بود ظرف بود اینجا قول مختار قول بهتر همین است که منصوب بشه مانند اکل یومن زیدن تازری بوهو که اینجا بین همزه که ا باشه و زیدن به وسیله ظرف کل فاصله فاصلی هست لذا بهتر این است که زیدن چی بشه مختار اینه که زید منصوب بشه إذا وقع المشغول أن بعد آطف على جملة فعلية خب من جايك نسب الجهاز إناس إذا وقع المشغول أنه بعد آطف على جملة فعلية لأن النصب يقتزي أزمار الفعل فيكون أطف جملة فعلية على مثلها نحو قام زيد وأمرا أكرمته بال بس زمانی که واقع شد مشغول عنه بعد از حرف عطف و اون هم عطف شده بود بر جمله فعلیه اون هم عطف شده بود بر چی بر جمله فعلیه بله میگه اینجا منصوب نصبش ارجه است چرا چون نصب به ما میگه که آقا قبل از خودش فعلی بسمر است چی هست و ادف جمله فعلی بر فعلی بهتر است مانند نن از قام زیدون و عم رن اکرم تو اینجا امرن نصبش ارجح است زیرا اگر ما منصوبش کنیم معنیش این است که قبلش فعلی هست پس قبلش چی هست؟ فعلی بله و جمله و ادف في بر فعلی ارجح است خل... فإذا فاصلة بين العاطف والمشغولان بأما ترجح الرفع والنصب يقول الآن فاصلة بين عاطف يعني حرف عطف وبين مشغولان بوسيلة أما بوسيلة چه؟ انجار راجح ك... است انجار راجح است رفع برنصب انجار راجح زرب تزايدن و اما امرن فأكرمته. تو زیدن و اما امرون اینجا بین واب که عاطف هست و بین امرون به وسیله اما فاصله اومده اینجا راجع این است که امرون رو مرفوک کنیم اینجا رفت بر نصف راجع هست چرا خودش توضیح میده میگه انل کلام بعد اما مستف مقون ما قبله میگه زیرا کلام بعد از اما کلامی است که از نو شروع شده و؟ از ما قبلش قد شده از ما قبلش شده؟ بله اذا كان الاسم المشتغل انه جواباً منصوب لفظا او محلا بما يليه نحو زيدا زربتهو خب جواب لمن قال ایهم زربتا ایهم در این حالت هم نصب راجعه است میگه زمانی که اسم مشتغل انه زمانی که اسم جوابی بود برای استفهامی که لفظا یا محلن منصوب هست برای بعدش برای چیش موقعی من میگم ایهم هم کدام یک را زدی تو میخوای با مشتغل عنه یا با مشغول عنه جواب بدی اینجا راجح این است که منصوبش کنی. زیدن زربتهو زیدن زربت. زربتهو و اما اذا کان الی استفهام و مرفوعن فی سوال فیتارجه و رف زربته. لما قال ایهم زربتهو خوب میگه اما زمانی که استفهام ما مرفوع بود در سوال استفهام خودش بود؟ مرفوع در سوال. اینجا رف راجه است. مانند زیدن ضربته اینجا رف زید ارجه است. در جواب کسی که میگه ایو هم او کدام یک رازدی تو میگی زیدون تو چرا؟ چون اینجا استفهام ما خودش مرفوعه ایو خودش چیه؟ مرفوعه اما اونجا ایه چی بود؟ منصوب بود ایه هم زربته ایه هم؟ مفعول بود بله لان حکم الجواب انطبق الاس سوال میگه زیر حکم جواب اینه که منطبقه بر سد و پنجاهشت یا چه مشغول و خب میگه ارجه است رفع مشغول ان اذا لم يكن ما يوجب الرفع او النصب ولا ما يرجح الناس میگه ز... م... ارجه است رفع مشغول ان زمانی که نبوت زمانی که نبوت از اون چیزایی که رفع رو واجب میکنن یا نصب رو و از اون چیزایی که ك... از اون حالاتی که نصب رو راجع میکردن از این ما خوندیم چه زمان رف واجب است، چه زمان نصب واجب است و چه زمان نصب ارجح است. میگه اگر از این گزینه ها نبود، پس رف چی میشه؟ ارجح میشه.